بسم الله لله رب العالمین الله سیدنا الله و اللهم جميع که عرض شد امروز باز برگردیم با عالم روایات رو ببینیم روایاتی که در باب حل الهیه فریقه شیعه و سنی و غیره ما نه رو کردن چی جویه شد که اجمالا من بیروز ارز کردم این روایات رو صابقه تاریخی داره و من بعدی ها شده از نقاط تاریخیشم تاریخی ارز نقاط نهست همبرم بیروز ارز شد اجمالا از بعدی از شواهد معلوم میشه که این حکم در سال ششم هجری شده این که غیش رو بگذارن اعفالله ها این در سال ششم هجریه اون سالی بود که از طرف خسورترویز آمانم به مدینه البته این مطلب من همیشه چونکه اصلاح هر مطلبی رو در این, این که مطلب میشه اون اعرضی ها میشه درست ندید میشه این ای مهم این مصدری صحاح اهل سنت نیامده. اونجا را آمده خطوه اهل سنت. اما صحیح بخاری نیامده. در در بعد از متون اون رو که شبقه و بالمجوس و مشکیم به یهود اینم آمده اما این دقیقاً مجوس و سالشیش و این, ها این نیامده. این نکته تاریخی جزئیاتون باشه. و این که حدیث رو ما با شرایط زمانی و خودش معنا بکنی حالا من برد هر احتمال داره که معنای جدیدی به رقایت داری این احتمال هست مثلا اگه بگن پیغمبر کنه عرف و لحان یکی از کلمات پیغمبر بود ممکن است باید ریش رو دراز بکنه ولی بکنه ریش رو شد اما وقتی که کسی نید پیشه پیغمبر ریش رو از تحت تراشیده پیغمبر میگن ما این کار رو ما اقفال میکنه ممکن است بگیم که از این مقت می حرمت نه دراست کردن یعنی اون تراشیدن با <تصفيق> به. گفت این کلمه لطن سر کنیم سبیلینه برشن یک کلمه ممکنه هفتا محنا اینجوری فرق اینجوری کنن چیز این کلام بزنان و موسیقی همینه که ظهور کلام یک چیز ثابتی نیست همونتون کلام اش اجمال مثل این که شبیه این مثل هم قومی داره که زواهر کلام به من قصد افحام ها مثلا شاید در اونجا اون فرستاده های کسایی میفهمده که ما ریش میگذاریم در موانشون که ریش میفهمشیم نیکن که ریش رو دراز میکنیم این اصل دراز کردن توش نبوده الان که که ماکان ارز کردن این قصه در سال بوده به لحاظه اغزشی این جزء متون صحیحشون نیست در مسادر صحیحشون آمده در کتبشون در نهتیر آمده, آمده. اما در جزء متون صحیحشون نیست یعنی در جزب طریق بخار اینها نیست که پیغمبر به وقت ایرانی ها گفتن که خوف و شواهد این یک بندر به لحاظ شهرت از کلمه صاحبا شواهد هست که این مصدر از سیفنبر اکن بوده به در حاضر مشکل داره که حالا بعد یواشه ها چهتیکین ها شد که مرحوم سال وسائل این بباید تو خورمت همه هیلو درواب 67 از اقواب و آزابال همه مورده دیروز من اصلا جلد یکی چاپ مرحوم عربانی در این چاپ جایی جلد, جلد دوست و از شد که مرحوم سال وسائل قیل از حالا خوده اونوان باب که عظم جواز دهد به است چند تا باب در رابطه با لحیه داره خدا اشاره میکنه ما هم به مقداری داریم مطلب اشاره خواهیم این مطلب دو مطلب سوم ارز کردیم که این هر کله ها در مسادر ما فقط در فقیح آمده پیشتر رو در کتاب کلینی که قبل دیشان آمده در کتاب تحلیب ها نی کتابه تحریریه والا غیری در صندوق نامه و ظاهرا کلا این بحثی نبرده چون تحرید مطلبی انشاء شرع موید شیخ مفید به احتمال قوی شیخ مفید بحث را درباره حمام یانه آورده لذا اثر شیخ مفید راجب به الهیه و چیزای دیگری درباره سوط جوکردن و کوتاه کردن و اخلاق الهیه اصلا کلا شیعه توصی نداره ظاهرا بخواستیم یه مسائل مطرح نشه و اما کلا من دیروز که کولنیا افول لهی ندا، همیشه ولی کولنیا افول لاند. لکن در کتاب زی جامان یزی شش کاپی چاپ جدیده، در باب لهی داره، اما خیلی دوباره دست سرودن، یعنی هفته هشت و, و شش را هفت دوباره داره. لکن تمام اون دوباره در احزلهیان کوتاه کردنی دیشی. و این که بیمار داره تغذیهش نداره، زاده داره تغذیه در آتش هستم. و من علیه السلام از ریشون کتام میکردن امام دو... فهمون در در حال ریشون با حال ما همین مهرامی میترینن سر ریشون مهرامی رو ایسی میکردن ریشون جور میکردن که که بشه به که طولانی روشون این داره در روایه من فکر میکنم از سر از کم دیگه زهب خود رن من. من بود کل این روایه از خلیده هاییل شهرکه ها اون روایه هایی که تهدید میکنه این که باید میگه ما زادن و خبزه هستان یه افعاله های باز باشه خبزه میشه ما من فکر میکنم به ملازمه یعنی چند ما زادن قبول کرده که ما افعاله ها داریم چونی زادن و خبزه پنه های نظاما دیوشه از که ایشون نیورده درسته ایشون اما احتمالا ایشون قبول داره چون روایات کتاه کردن رو برده به این روایاتی کتاه کردن باید تخصیص باشه برای که به نقل هم مقرد کرد ظاهرا این خود باشه این اجمال قصه و اما روایات که جهات بحثیش از خیلی حدیث اول باب شست محمد ابن علیه ابن حسین قال قال رسول الله صلی اللہ علیه و علیه وسلم حف و شوارد و عقل البته حفو هم آمده احفو هم آمده یعنی صلاتی مجرد و صلاتی نزید قدش هفت اینشالله میگه دو سه جور معنا این برای برمیش ها توگیش میگه اعفو هم آمده به همزه فرد و اعفو هم آمده به همزه ورس یا به عبایت دیگری سلاتی مجرد هم آمده از افا یعفا یا یعفو سلاتی مدیدونفی یا به طریق خوده سردین ربایی هم آمده اعفا یعفی اعفا هم هم اعفو آمده هم و وعفو آمده هر دو اصطلاح مصرف شده که دارد عرض میخوند وَلَا تَشَبَّهُو بِلْ يَهُود که تشبهو تا تشبهو است ایک تا شرف روشی به روش مرموم شیخ صدو ارز کرد این متنی قوانق شیخ صدو گم رویان رسول الله قبول نداره هم گفت گم قال رسول الله به اسناد معلوم مرمومی شه پیشی خجت که اینجا نصفت داره من یه توضیحی رو درود عرض کردم که بحث رو سابقا توضیح دادن دیگه وارد اون بحث نمیشیم شیشه صدوق چه قرار قال صادق شیشه روبین صادره به لحاظ ارزشی فرق نمیکنه هر دو پیشکان حجت دقیق ما هم اخلاق دیباجه است چون میگه جمیع مافی مسرجون در کد مشوره و, و حجت اون بین ال بین الله و می جمیع مافی حجت دیگه فرقی بین روا و قال صادق و روبین صادره نداره به لحاظ حجیت هر دو بله ها دین کیمیایی ظریف اینا نمیشه اصفار کرد انصافا فرهم خب طبعا این سؤال میمونه خب اگه فرهمون شه اونگاه اون قاله شده به گور رو شد من فکر میکنم این قاله و رویهاش یه روی مبانی حدیث شناسیه نه روی ارزش داده این که بعد ارز هر هر چیزی رو به دقت خوب دقت کنید بعد از اینکه ذکر میکنید مصدر مبدا ارزیابی بشه هر این مثلا که من از روح از مرسون عرض کردم نه از مشایخ شنید نه از کتابی دیدید نه از آثار صدوح هست نه بعد صدوح این یک نوع چیزی که خود من میزنم نمیخوام بگرم مثلا جایی دیدیم یا از کسی شنیدیم ظاهرن ظاهرن نقطی پرقش به لحاظ مثلا تردوب صدوق با مشایخ قوم و با جبل قوم مثلا گاهی اوقات یه حدیث در قوم جا روزه بین ب و دیگه یه قائلسو یه وقتی حدیث بگیره مشایخ چرا خوب یه بکن. بکنه مثلا مختار رای اما ایشون قبول داره بوده راکن ایشون داره حفظ مقام و شایخ میگه رو بیان رسو به رسول الله بنظرن اینطوریه تو دیگه من فهمیدم از میفهم که استاد اینو به هیچ نسبت نسبت نمیدن ممکن شماها قبول ندارید اختیار دارید چه مصلحت از مشایخ هم نشیدین در کتاب احساس من حدث من اینه حدثی که من دارم اینه که ایشان روشش اینه ولی این که مرحوم صدوق من چند بار ارز کردم چند بار همه که ارز بکنم در مبانی حجیت خبر یک مبانی مبانی حجیت تعبودی خبره که اصلا کن اهل سنت قائل بین شدن و علمای شیه از بعد از علامه غالبا قائل شدن یا حجیت خبر عرض یا خبر سره کردم از کردن. هر وقت کسی قائل باشه هر خبری دارای این معیار باشه حجتی میشه تهم خدوی این معیار مثلا اهل سنت معیار رو ادالت میگیر محبومه از علمای ما صاحب معالم و صاحب مدارک هم ادالت میگن آدم خویی معیار رو به ساقت میگن سره بودن ها معیار رو در کتب مشهور بودن میگن هربعه و غیره هربعه میگه این تعبود داریم اگر در یک کتاب مشروع بود شاره گفتی توال قبول بکنیم از خجیت تعبودی خبر یعنی شاره آمده یک معیار گذاشته هر جا خبر اون معیار توش بود خجیت به الله این یه نسیم شما باشیم خجیت تعبودی خبر دو خجیت اغلالی خبر این معناش این است که معیار نداریم ما باید تجینه شواهد بکنیم شواهد متعذر جمع بکنیم تا وصول پیدا بکنیم که این خبر صادر شد سه عدم حجید خبر عدم حجید خبر یهیش فرم نمی کنه چه میار باشه اینوی به ایسا شواهد ما شواهد قامون میکنیم بر حکمی میکنی که در خبر هست نه در خود خبر لذا رأی دوم با خبر معامله در لحظی میکنه به اطلاعش تمثب میکنه رأی سوم به اصلاحش تمثب نمیکنه. به اموم به اطلامشن. او به خوف نگاه میکنه او کاری به خبر نداره اگر شد که در میان آقای اصحاب ما روشن نیست البته است نمربون شفیع ابرازش خالی از اعلام نیست روشن نیست ما مبنای هجیت تعبدی خبر نشوندیم خود بکار خود نه ها نه قومیها این اشتباه نشد مبنی حجید تعبودی خبر عرض کردم. زمینه هاش از سالهای 150 شروع شد. در پیش اهل سندن. تبرم دو زمینه داشت. یک زمینه کبرا داشت به خبر عادل حجید. تعبودن. یک سغرا داشت که فلانه آدله. کبرا شد اصول. سغرا شد رجال. این دو سهل یواشواش پا به صحنه در معارف دینی بذاشت. روشن شد. یکی اصول یکی هم رجال یکی سغرا یکی کبرا از کلمه اولین کسی که اهل سنت با عنوان به اصطلاح فتش عنه رجال در ایرام شما وسط من حجاج بسری میدونه مثلا افای سال شستوی این اولین کسی و از سال های تا احساس تقریبا اصول جا گره و تقریبا یه پروردش رو یه تو رساله شافعی نظرن رساله شافعی سال نازو سال نازو نوشه کده به زیاد نداشت من وقتی بوده پنجوه هفسته پیچه سال کنشده همون به زیاد نشه هر ساله نمیشه در از هم از قرن دوم به بعد این از قرن سوم یه تطبیق شروع شد پیش احرسانه اینه یه خوب بوده مثلا این گفت این حدیث سریعه مثلا مبانیشون هم در تقییم حدیث مختلف شد اون پیش فلان صحیه پیش فلان سعی نیست پیش مسلم صحیه پیش بخاری نیست من واردون اون بحث نمیشه صحیح شد حسن شد این از قرن دوم شد اواخر قرن دوبام یعنی بعد از این امتزاج ما بین فقه و اصول ما نداریم ما تو اون زمان ها این رو نداریم خودت افتا کنیم ما تو زمان ها این حجیت تعبار خود بنده این هم باز میگم بنده چون جای همین محترم از سالهای دیویست و بعد پیش ما اصطلاح اصل شروع شد به جایی سری باقی در چون که گفته. چون تا اونجایی که ما پریگیری کردیم از همین سالهای دیویست کلمه اصل که اصطلاح ما آمند لحو اصلان لحو اصلان این احتمال داره احتمال دادم که این اصل جانشین همون کلمه سری شد صحیح بخار در شد بخار در متوفای دیگه سنجوشی شد علمای ما هم داریم علمایی در همین واقعا هم گفتن که محمد جوزا بخاری و کارهای حدیثی در حد بخاری انجام می‌ده شازان اصلا معاصره بخاری ایشان استاد مشترک با بخاری داره اصلا تظون ایشان ها هم استاد داره که هم بخاری ایشان میکنه نفرین تظون ایشان میکنه در درجه تظون بیان مثلا من از اون وقتی تظون میاد توی شیعه روی معنای سنی این بحث کولانیستون الانی می‌خوام وارد بشم وقتم مصاحبیستم می‌خوام اینقدر همیشه ای زمینه از از خواب این زمینه در ذهن من باشه روشن باشه اصحاب ما وقتی این اصطلاح رو که اصحاب به جای تروی کلمه صحیح بررسی و تحت بررسی کردن اسمش رو دین تحقیق فارسی یعنی چیزی که سرد رو بررسی و تمررجال رو رواسو رو آمدن کتاب رو بررسی کردن این احتمالی هست که بنده عرض کنم کلمه اصلی بعید نیست در اول معادل صحیح این نبوده چون یه جوری گفته نشده بنابراین ارزش این که عشقو سر چه اعتماد میگن روی ثوده دیگه سیلانی داره که این جای دیگه بود ارجوان جایی اینجا نیست بنابراین اخاوه ما روی جهات مختلفی که الان جای شرش اینجا نیست اعتماد بیشتر روی مصادر بود تا می سند به اصطلاح که سنی ها داره دا اصحاب ما تدریجا فریضه نشدن سنی ها فریضه به این معنی که ما داریم مصاریخ نجاشی آفرت شیخ قیلسی مشاریخ از خواب ما مبنای خوب دقیق بفرمی تا زمان علامه تا زمان علامه به استادیشان ما همچین دقیق, دقیق دقیق بگیم یک کسی داشته باشیم در یک حد شهره مشخصی که قائل باشه به مبنای حجیت عبدی خبر نداریم ما دو مبنای داریم یا حجیت اغلایی خبره یا عدم حجته خدا سید نمونه در کتاباتش از این زائر میشه عدم حجته خدا به قصد بکنه ابن ادریس عدم حجته خدا من دنبال حکم نه ولو خبر جایی که از اصول مشهور ما باشه کتاب بحریج وجیدا از اصلا قبول حکمش رو قبول می‌کردن الفاظ خبر رو قبول. لکن در بغداد و در کوفه به خصوص در منتظره مثلا شرط مفقید از شیخ مفید داره ساله در چیز نرف شده در اصول نرف شده و در کتاب مغنه ایشون هم من با مراجع این بازم عرض میکنم از کسی نشده با مراجعه ای که به مغنه داریم مغنه ای شیخ مفید داریم این اصلا یک هوا خیلی بردی کتاب هست و چند تا روید رو برده از باب نواده روید روید مجموعه اش خبر احساسش که اینکه ایشون ق سهیل محسوسا قائل در عدم و حجیه مشایخ قوم هم قائل به حجیه تعبدی نیستن قائل به حجیه اغلایی خبره فقط فرقی که مشایخمون با بغداد دارن اینه در قوم به اصطلاح شواهد اغلایی رو بیشتر بردن رو مشایخ یعنی رو اغلای طائفه در بغداد رو اغلا ما هم اغلا شواهد و قغلایی آنه من خواهد چیه باشه؟ مشایخ باشه؟ پس بنابراین اصولا اگر کتاب فقیر رو میخواد بررسی کنی به طور کلی این در ذهنتون باشه اونی که من خودم بشرتیدم به نتایج. اولا ایشون خوب تصدیل میکنه و جمعی اماپی مستقر جنمن کتب المشهوره حلت یعره ی حلمعبل و یعره ی حلمرجم کتاب سعدل نبدالله کتاب سقاط حریض رو اسم میگره و غیر از اذه که منل و اصول بالمصنفات حس می‌کنم سوال من اینه که من کتابا و از اصول و مصنفات مشهور بین طایفه گرفتم احساس من اینه احساس من اینه اگر حدیثی در این اصول مشهوره و مصنفات مشهوره و مطلع طایفه قبول بین مشایخ من جمله شیخ اینان ابن الوری مهمش نبوز حدیثیست که این شراط نداشت اما ایشان قبول داره لازم می کنه هرچه باقا احساسن اینه از کلم حدسن خب دقت بکنیم اگه کسی همه شما قبول نداره و نداره نبوزونیم خب مصدبیست و از رضا رو خودهی سال گذاشته از دوان صدو ما داریم با اشتهاد حدس و توضیح داده نشده به ذهن من اینه که اگر گفت قال رسول الله تو مسادر معروفتری بوده اگر تو مسادر مشهور نبوده اما ایشان قبول داشته پس قال رسول الله جایی که در مسادر مشهور بوده یک یا مسادری که به هر حال مشایث قوم قبول داشتن حدییت اغلایی اگل اغلا یعنی مشایخ بوده برد. یه دفعی هدییت و اغلایی اغلا اغلا مثل دانشگاه دنیا میگیم به ساز حت دانشگاهی اصطلاح این روی زبابت دانشگاهی قابل قبوله بردادی ها مثل سیگه مرتضی اصلا حجیه رو نبودن مثل شیخ مکیل حجیه رو احلایی معنا این روشن آقا بودن شیخ اولین کسی که بحث حجیه رو مفرح کرد و به فکر کشی بارز بارزان علامه هست کار علامه مثلا ها بخواهده همه همه همه همه همه همه همه همه همه کار در حقیقت یک نوع انحراف بود در تفکرات حدیثی شیعه. اما به بعد این تغییر شد ایده قبول کردن و من توضیحات کافی رو ارث کردم. این فقط یک نکته بود. اگر این راه جدید که الان آمد قبول می‌کردن خیلی از روایاتی که به راه قدیم قبول کرده بودن نفی می‌شدن. این چی شد؟ ببین شیعه اومد حالا چیکار بکنیم طبق مهیار علامه حدیث صحیح بود طبق عمل کلیمی و شیخ و مفیدین ها مثل ضعیف بود اینا عملش داشته بودن این هم بحث این آمد که شهرت جابره شهرات بحث شهرت از بعد از علامه آمد. این تو اصول ما نیست من چرارن عرض کردم بحث جابریت شهرت تو اصول سنی نیست هیچیک از فرق اهل سنی نزید بحث نزد که شهرت جابر هسته نیست این بحث رو ما داریم بعد از علامه نکته‌ی طلایی اینه بحث و اصولی اینه علامه منهج جدید رو در حدیث گفت با اون منهج قدیم نمیخواد طبیعتاً ما تاولثا دیگه من توضیحش تونلی شد این که این مورد بین قاله و رو شما تطبیق بین مواردش با موارد احسن این قال رسول الله ای که ایشان فرموده به نظر من اینطور میاد نظر ایشان قبول مشایخه این به لحاظ اجمال قصه اما این چیشون از کجا گرفته چون از کردم اصلا اعفالله ها در مسادر شیعه ما نیامده این هم بود از اون برای هم خوب دقت بکنید من عرفتن کرارم صدوق فوق ال آده فوق یک واق را پسا نمی کنه این باید با این مرسی در یک کتابی دیده باشه البته مرس موضوع قبول علمای قوم بوده اما در که اما در کجا نمیدونیم در کجا تقریب میکنیم الان دقیقا نمیدونیم چون در مسادر ما نیست بله توی مسادر اهل سنت هم ولا تشبهو بلیهو در زیدش این مطلب نیست غالبا رو نقل نکردن بعد مسادر اهل سنت رو میخونن چون مسادر اهل سنت دو مورد آمده یکی که خب این واقعا پیش اونا ضعیفه من احتمال جن صدوق از همینجا گرسته این تهاوی تهاوی از علماء و فوق احل نیست تقریبا یه مردان قبل از صدوقه تحاوی... من غیر از تحاوی که درم در اهل به تو اونجایی که من مراجعه کردم گرفتم تحاوی نداره تهاوی از انت نهار کرده اونجا گفته احف و شباره. اینجا رو حفو اینملدار فرداریین حفو و اهبوب نیست. وقلله ها مثل همونه ولات شب به ها به این مثلی که الان، خیلی برای ما راحت شد. این در کتاب صابی آمده که از سقا اهلشونت من این دیتر می نیست انافن چندی کتاب بر مضدی با کتابشان معوس در تاب تابی از ف های خوب اهل سنت در رواس ها با اینکه اهل که اینو من فکر میکنم فکر میکنم فکر میکنن این از این گرفته گیرسته بعید میدونم یه متن مشابه این هم داریم در کتاب مسند احمد بن حنبل اعف اللها و جزء الشوارق و, و غی روشی قانون ولا تشبب به یهود و نصارا خیلی بعید میمونه که این گیرسته باشه چون باید خیلی در سر تصرف کرده باشه خیلی بعید اون که من الان احتمال قبی میدم به حسب خبرویه بقیده اینکه میام جایی آمده ظاهراً <تصفح> صدوق از تحاوی گرفته حالا تحاوی ممکن از مسادر ما گرفته جایی دیگه گرفته مسادر. اون نمیدونم مسادر زیده هم من نگاه نکردم این مرد تقریبا با فرق و تقریبای کلمه احرکو و حفوق هیچ شرقی با هم نداره این من دقیقا که نشونده جبکت شیخ صدوق رو دقیقا از کتاب صحافی احنافی گرفته شده مصندن انه حالا یا ایشون از صحافی نرکده یا از مسلر صحافی نرکده احتمال داره و هرها به ذهن ما رواست و این رواست باید, باید که در مساده ما فیلن نیست انصافا از عباس صدوق این مقضا نه این که این صحیح و ذریع. به ذهن این میاد که روایت رو مشاهد قب قبول کردن ولو در مسادر ما نبوده این راجبه این روایتی که صدوق در شماره یکی ایشون رو شماره دو که ایشون رو بردن قال باز در همون کتاب عزیزی در همون تهارت رو در آداب همه قال, قال رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم اِنَّ به اصطلاح جلز ها هم و وقت رو شوارب هم به این هم نحن نجرز و شوارب و نعفل لحا لحام پسند مقرار شده ویل فطره این به اصطلاح به این من تلان من اون این من که ارز کردم که تاریخ نشون میده که مجوس رو به این قصه بوده این دارن اما با این مرد که این المجوز فعلو کدا دارن که خالف المجوز و اهل سنت دارن چون از ما الان بله نداریم در جای دیگه این مرد و اهل سنت دارن اما به این مطلی که ایشان در میگن آورده این مطلی که هم خوندن برای شما این رو من هنوز در بین اهل سنت پیدا نکنم دیگه اینکه هم گیری کردیم از این مقلی تیشون فهم بودن اجمال این مقلب هست از درست هم هست اجمالش اما این خصوصیت با این تدبیراتی که فهم فرمودن اینو من فعلا پیدا نکردم این راجع به این روایه حدیث شماره 3 اون وقت ارز کردم ما خالف المشرکین هم داریم خالف اليهود هم داریم خالف و هم دارید ظاهرن اینطور باشید یهود به عنوان سنت هسته براهی ریش رو خیلی دراز می داشتن. این خالف و یهود براتشم به یهود مال زیل احفله هاست یعنی ریش رو ول بکنید اما به یهود هم نرسید تشبه بنام نکن اینطور طور می شید رو می و سبیه ها رو بزرگ می کردن. اون این که پیغمبر قرار در مقابل هر دو یعنی ریش رو نتراشدن و سبیل رو کوتاه کردن در بحث کوتاه کردن سبیل سابقا یه توضیح بزن که بعد این شال آماز حفظ میکنم بحشه ثبوت و خالد مشرکین از شواهد این طور میشه که باز مشرکین ریش رو بزرگ میکردن و خاطر که حالا سنت های سبیل های مثلا میگفتن لکه این ها رو هم بزرگ میکردند. حضرت با مشکلی هم مخالفت بکنه یعنی ریش ها مثلا بزرگ بشه و سبیل کوتاه بشه این تا مخالفتی که داریم انصافا معنا داره خالی نیست از من شما شماله سه که در اینجاست مرحوم سار از معانل اخبار تا دو کرده مرحوم شیخ صدو در معانل اخبار عمل حسین ابن ابراهیم المککرد مکتب به اصطلاح کسی بوده که ما در پارسی روییم چه مکتب اینا گاهی بشین معدب میگفتن گاهی مکتب میگفتن اصطلاح معدب در اون زمان کسانی میبودن این... به اصطلاح قول ما ها وقتی که اول طلب نحو و, و, اینا که و نحو سرخوین رو کنیم از سادید ادبیات که اینکه سرخ و نحوین ها یاد میدن اینا معدب میگفتن مرادشون از معدب عدب و قوله که سرخ و مراد از مکتب هم بیشتر مکتبی داشتن که یا عدبی یا مثلا قرآن یاد میدادن این حسین ابن ازراین مکتب جزو مشارف صدوره که نمیشناسی از جزو مشارف شیعه اصطلاح است. هم به اصطلاح بنده جزو مثلا طلبه هایی بوده آخونده در قم که هم مکتبدار بوده و هم به لحاظه علمی شعارت علمی نداشته و که خب هستن هم هستن میشه میرفتن این می رفتن از مخصوصا اگر قرار افرادی بودن که خیلی مشهور نبودن اینا می از نوم مثلا مثل امون مثل زهردی هستن که بوچین چند امون زمانی همه ارتباط دارن کلا می از نوم مثلا اجازاتی می گیرن یکی این بوده امال حسینب نغرای مکتب روزه مشاهی که ایشانه که توصیح نشده ام محمد ابن جعفر الاسدی ارز از مرموم محمد بن جعفر اسدی رو چند بار دادن، از بزرگانی شیه است از بزرگان طایف از سشمان و کوفه هست عرب هست واقعا از بنی حسد از موالی نیست ولی کن بعد برای نشده دار تشریع و به ری تهران و با وکل ها مستقیم داشت با وکل سر مقدار زیادی توقیعات رو از وکل ها ایشون به تهران پخش شده توسط ایشان و مرد بسیار است، چیزهای منفرز زیاد داره که مشهورتری هم زیاد جامعه زیاد جامعه همیشون نهر کردن رحمه الله بسیار مرد بزرگ وقت چون نشد در تشریعه میکردن به احتمال قدی بزرگان و مشاهیر احتیاط میکردن با ایشان ملاقات نمیکردن اینی که مثل حسین ندرار مکتر میرفته در ری ازشون اجازه تحمل حدیث کرد. ام موسم امران نخی این رو ما دقیقا نمی از کردیم ایشون از برسان نوفلی هست طایفش نوفلی گفته میشه دوی نخر نخلی یه طایفه معروفی ندیگه من همین کمیده دیدار نخلی یه طایفه بد نیست از اونها به نام نوفل نوفلی ها از نخری ها هستند. یک نوفلی هم داریم که اینها از عموزادیوان امام ساده هم نوفلدن عبدالمطلب از نواهای از عبدالمطلب اینها از اونها نیستن اینا از یمن و با ها سید نیستن هم سید هست هم موسمه امران نخری ایشون رو هم نمیشناسیم اما این احتمال خیلی قویه این نوپلی نخر اینم در ری بوده احتمالش مثلا جزه مشایخ بوده که در ری آمده ساکن ری شده مرحوم حسدی از ایشان نقل کرده ایشان که سربرادر این معروف هست نوپلی معروف هست نوپلی همست عنو کنی حسین بن یزی ایشون پسر برادر حسین بن یزی نوفری هستن ایشون همه همی شنسیم انعام نیهی حسین بن البته موسی موسف نعمران نخیی در جامعه هم هست اونگش هم غیر از رو خودون اصدی و غیر از اون اولش اشکال یه میلاز داری جامعه خاطر موسف نعمران نخییه رحمه الله انعام نیهی حسین بن یزی این حسین بن یزی, یزی نوفری معروفه که اصلا این نوفلی ها نخیی هست نزدی امن هستم خیلی از نوفلی های بنیه هاشه اما همهی حسین ابن یدی از چند نفری هم دارم اینجا جایی یه حسین از اصلا کوفیه اصلا این ها جزوه هشاره یعنی هستن که ساکن کوفه بودن بعد منتقل میشه به غی نوفلی برو منتقل میشه به غی و یه نفضا آثارش در غی دو ما رسیده وقیل نهو قلاقی آخر اموردی هم مولا همین نوپلی که معروف این گلوم هم احتمالا سیاسی باشه بلید گلوم هفاردی باشه الانیانه این حسین نیزید نوپلی به عنوان توصیح نداره بلید مرمون استاد از دار کانون زیارات و تفسیر علی ابن ازراحیم توصیحش را هم نهی که خبونه ازش هم همه همیه حسین نیزید همه علی ابن قرام این به ای موضوعی محل کلامه محل توجه که کی هست آیا در کتاب های ما جوای مختلفی اسمش آمازه چون یه حدیث و چندان باب برایش متوقف نیست چون یه حدیث مشتبات دیگر هم داره خیلی من بحث نمی این علی ابن قراب خیلی بحثای رجالی فهستی لطیفی داره اگه همین واظبیشی چا رو با توین بیرون خیلی яхшы گرفه‌میشی. طلبتون باشه یه جایی بیید. به هر حال ما کارو دستی می‌شیم. ان شاء الله بزرگان هم دستی چن یعنی اینقدر مشکل بوده که حتی امسال نجاشین ها گیر کردن در فلسطین. از اونجوری سیلی گفتیه بزرگان درجه یک ماطوشی کردن. این احتیاج یه شانگی داره که الان مناسب نیست اوهامی که پیدا شده، اشتباهی که پیدا شده، فارسی اون اوهام و اشتباهات و جابجایی ها طول داره یه حالا انشاءالای وقتی باشه وقتی یه روزی اهلی مبارا و اگه برنسی انجر فرق محمد رو در کتاب ماندر اخبار داره خیر جعافر چون اهلی مبارا با اهل سنت اینه توی کتاب اهل سنت عنوان داره در شرف حالا سن نوشن کانه یه و ظاهرا برخوردی هم که با امام صادق داشته در جوانیش بوده خیلی با اخلاص صدمت حضرت زستی. چون رفاستیش رو ساده هشتر و چار می دوشن این چیز در مثلا سی سال بعد از امام ساده بر خودش با امام در تنین جوانی بوده و خیلی یعنی از احرسونتی خیلی برخورده خوبی داره با امام حال حدستانی خیر و جعافر جعفران و محمدن ساده یعنی خیران داری تعبیر به خیر و جعافر انا آجی یعنی امام باقر سلام الله علیه نه. البته شیخ در رجالش شنوشه علی بن قران اسند نه این بلا علامت نیست. به هر حال, حال من هر این بود ثقه قواعد و شواهد اهل اینجا انجام ناقصه چیز هم نکرده توضیح نمید در آیون های ستاب معانل اخبار پیش باشه توی این کامتر بنگاه کنن هم عدی یعنی امام باغه هم جدهی زمیر جدهی علا خلاف القادر و عدیش برمیگرد قادرم باید به خود حل... امام صالح برگرد علا خلاف القادر این مراده جدی یعنی امام حسین تا آنگاه انا این ان ابي او صداره كمبيوتر نگاه من مانع درخواس حالا انا ابي محمد ان ابي عن جدته ان ابي هنا به ما مراجعه کردن این ان جده روشت لون کی یه لغزه اصطلاحیه که در کتاب اهل سنت به کار برده شده ما ها چون نداریم بعد بله. این انا ابي یعنی امباخه ان جده یعنی جد امباخه یعنی امام حسین خب فرزند من جد امام صادق علیه السلام از سجاد ان ابی ان جدیه یعنی امام حسین ان ابی یعنی امیر رو می‌گنید قال رسول خب الله صلی الله علیه و آله خوب شوارف و فروع کل نهایا و و لا تشد و هو بالمیوس و ایده که این حدیث مصدر مردم کلین مردم خدا سلو در خدیه نکی دا از کشان باهوش مجوز نمیشه مسیرش رو سلو همچی کار میکنه اونجا در کشان یهود, یهود. اونجا یه خدیه در جام خدیه است بریدین کار رو کنه که عالیه این هم میبره از کرده و شر حال علی شیخ داره اسنده آن چند بار من از کرده آی کوی حال جور قرارها چه احتمال دادن در اسنده و یعنی من شیخ توسی توصی اسنده داره اسنده به فعل ماضی مجهول ار هو اصل ند به ان هو یعنی شیء که توصی اصل داره ان یعنی خود سراوی اصل ند ان ما هاي چهار تا معنا برای شرح دادن معانی واضح نیست زیرا مراد جدی روشن می بحمد الله حلق کرد این چهار معنای که ایشون پرندر حالا من دقیقا تو زهن نیست دقیقا اجماع تو زهن بود لیکن تو زهن هم از سارای که هر چهار معنای ایشان قیلی صحیح صحیح عبارت اص نده یعنی اص ندر این شخص انها از اون امامی در اصحاب شه. چون حلق کردم بعضی جهاز ها روان روا یعنی مثل این که قلط لبی, لبی عبدالله پخا این که کلام امام صادق نهر کنه اسمش رواست اما اینجور نهر بکنه از دستان جرگران محمد انه ابیه انجد بیه انه ابیه قال ما رسول الله یعنی از امام صادق مصندر نقل کرده اصندر یعنی از امام صادق با سند نقل کرده نه کلام خود امام. چه در اینجا خود علیه ابن قرآت که مصند نر بکنه اسطلاحاً پیش ما وقتی کسی این جور مصمد از ما رو علامت تفنن میدونیم علامت آمنی بودنش میدونیم روشن شد پس اسمده این معانیش بعضی از بزرگان میگه من رو در تحضیل مقال هشت رو احتمال زدانت درست احتمال زیادی در این کلمه رو بردن این کلمه در نجوشه در شیخ در اصحاب امام ساده زیاده به نظر اینکه یه مردم امام با امام کازمه چند تا امام در بقیه امام نیست این در کتاب در رجال شما در فیالیستش شما نیست در نجشه هم در برقی هم نیست در کشی هم نیست این مرادیشان رحمه الله از این کلمه ظاهرن اینه یعنی ربا هنهاز الامام مصندن الارسول الله این هم <تص> این جهفرم عبی، این جهفرم عبی، این عبیه، این آقا رسول الله این دسته سنیه ها اینجور سنداره ای اشکال میکنن به مبانی خودشون چون میگن اگر جهفرم عبیه این امام باغر امام باغر انجبی یعنی امام حسین چون معروف نیست که امام باقر در وقت شاده در سید و شاده چار ساله بودن گفتن نمیارده که جهفرم عبیه این میشه مرسن اگر من عبیه امام باقر انجدیه یعنی جد امام صادق یعنی هزار سجاد انجدیه و هزار سجاد بزنی هزار سجاد علیه اینطوری ببینیم وقتی باشه هزار سجاد ان عبی ان عبی هم مواصل میشه وقت امام باقر رسول الله مشکل داشتون عمر ام امام کم بودن اونها اینجوری برداشتین از حدیثو ماها بالاخره هر کی شما ارزشش چندانه به هر حال فعلا در مصادر امام حدیثی که مصندن از امام صادق این حدیث رسولان که فعلا منحسر به همینه فعلا منحسر به همینه که اصل حدیث در کوفه بوده بعد آمده در ری از ری هم آمده به قوم توسط صدوق افهام هم الحمدلله زیاد داره یکی حسین رای مکتب استاد صدوق توصیه نشده یکی موسن نمران نخهی توصیح نشده یکی حسین نیزید نمفری نخری توثیق نشده بلکه پیله خلافی آخر ده خود علی ابن هم توثیق نداره سنیا چرا بودن ما بیده هستن. سنی ها ترید بشنم ما ها نداره لذا این سندتی الان در هر حال مشاید هر اصحاب نیستن بزن. بگید درستم باشه جز سندت هایی در و چار ما حساب میشه این دارید. ولی نکته نکته‌ای که ارجو می‌کنم خدمتون این نکته بر نیست. مرحوم شیخ صدوق در کتاب فرید جلد 4 نوادرش. یه حدیثی مناسبت به آخر این سند نقل کرده نش حسین نیازی در علیه قراق از محمد. در ضمن اونم مراجعه کردن جلد 4 فرید به یازده این شابه جامدریه به نظر. صدوق هم به حسین نیازی طریق نداره. برید نیست این طریقش واسه سریع طریق باشه آن مخواهم چون دوباره ها خوبی به ارسالش میکنن برید نیست این طریق به همون باشه اصلا الله على محمد